به نام خداوند جان و خرد که از این برتر بر برنگشتند سلام و درود بر شما شهروندگان عزیزی که برف رو تجربه کردید و ما هم برف رو تجربه کردیم و خدا رو شکر می‌کنیم از این نعمت خداوند که باریدن گرفت و ما اینجا شاهد هستیم شما هم هر جو که هستید حتما برف دارید باران دارید بارندگی دارید و یه مطلب دیگه ترافیک هم داری چون آقای دکتر فیدونی که میهمان ما هستن صاف کنند در یک کم سفرها ایشون هم یه مقاله دین اومد خودشون هم اومدن اینجا گفتن که چه طرفی اینجا اومد آره منم تعجب کردم سلام تو در شما باشید من تاو کردم اومدن اینقدر تفاوت بین حالا مثلا آره اونجا برای که حوای فاسد تو شهرها آب در... رو آلوده میکنه و تبدیل به بارون بارونی میشه که برای زمین هم دیار. زیان داره ولی به این دود و اینو خاموش. اما خوش بگذره رو باشه بله خدا رو شکر مواظب باشید اگر پشت ترافیک هستید اینجا بهتون میگم که خیلی شلوغ بود این منطقه که ما بودیم. به جای ترافیک شما میتونید راهبندان راه به کار ببرید. راهبندان. توشم به همین فکر کردم. آیا. خود داشتم شما زنگ زندی دیر شده بود. راهبندان. شما که در راهبندان هستید عامی نیست. رانندگان هستید، مراقب باشید، تر و برنامه ما رو گوش بدید اگر در ماشین هستید و به منزله حالا جالب آقای دکتر جانکی یکی از های ما گفت من همیشه برنامه شما رو در منزل میشنیدم یه بار رفتم با خانواده بودیم، بیرون بودیم، اومدیم برنامه رو مجبورم توی مهمونی بودیم اینکه توی ماشین گوش بدم بعد برنامه که شروع شد رسیدیم به خونه و اینا نیم ساعت برنامه رفته بود یک ساعت برنامه رو تو پارکینگ نشستم گفتم از دست ندم تو همون پارکینگ نشستم برنامه شما رو گوش گفتم فاصله که برم تا خونه و رادیو رو روشن کنم و اینا رو از دست میدم برنامه شما لطفا نشون من به یادم اون راننده‌م مه... گرامی تریلی میفتم به گفتم این برنامه آغاز میشه میذارم تو پارکینگ یک ساعتی اینو گوش می‌کنم شما می‌دونید که در یک ساعت و نیم چقدر میتونه کار بکنه نه نه. با این حال او در حقیقت غرور ملیش چنین ایجاب میکنه که به برنامه فرهنگی ملی و شاهنامه گوش بکنه و درآمد سر نظر بکنه و پیامک هایی که قبل از اینکه برنامه شروع شد یک ساعت این دو ساعت قبل از برنامه برای ما میرسه و پیامک هایی که همین موقعی که برنامه شروع میشه من میدنم دکمه می بینم که نوشته این پیامه که ما آماده ایم شاهنامه همون باز هستش کدام داستان چه صفحه ای؟ داستان پادشاهی کیخسرو نبرد ایران و توران و در شاهنامه صفحه 413 شاهنامه ویرایش آقای دکتور فیدون جنیدی استاد فیدون جنیدی صفحه 413 دفتر دوم. این هست و پیامک دیگه ای که برای ما رسیده و من در همین آغازی که از شنونده های عزیز ما هست خاطر این که الان ایشون یه جایی هستن که خیلی هم خوب هستش جای ما هم نوشتن خالی کردن در جزیره لابان هستن کنار خلیج فارس. خ... خلی... دریای فارس دریای فارس بگیم بیتره دریای فارس نیمی از این نام رو ما خودمون اگر و عربی بگیم اون عرب که سال 40 سال تازه کشورشون تشکیل شده اونا نمیان اونا هم نیمی دیگرشون بخوند عربی بکنن این عبید. دریا از زمان و باستان دریای پولیتیک بوده کهانترین آگاهی ها رو ما از این دریا داریم در کتاب های باستانی من اومده من یک گفتاری چند سال پیش یعنی در یه سمینار بود در استرالیا ایران شناسی استرالیا اون سخنرانی رو بیان کردم دریای پارس در شانومه و نوشته های باستانی اونو میتونن از اینترنت بگیرن نام این دریا بوده پویتیک در نوشته های و و بعد بعدن هم شده دریای پارس شما از صاحب نشینان این دریا از خورمشهر گرفته تا چابهار به هر کس بگید روستایی همه میگن دریای پارس هیچ کس نمیگه خلیج پارس کم کم ما به خود بیاییم که خودمونو بشناسیم خودمون در حقیقت یک بخانه دست دیگران ندیم که اونو نیم خلیجش رو گرفتن نیم دیگرش هم بخان بکنم که عربی حوییت دریا تغییر پیدا نمیکنه. ما در شاه داریم اشاره شده دریا بله بر نبرد هاموبران وقتی گفتیم که میخواستن حرکت کنن به طرف هاموبران از راه خشکی راه دور بود از راه زهره رفتن زهره یعنی دریای محیط پیداست که از دریای فرس رفتن و پیداست که از مرکز نبض دریانووردی جهان که در خلیج فرس است حرکت کردن بندر سیراف بندر سیراف بود که در بندر دریانووردی جهان باستان بوده که شرق و غرب جهان رو با هم پیوند میدوده و برای سر یک خودشه من فکر کردم سونامی بوده بعدن کسی بود که در این زمین دانش گفت نه این سونامی نبوده پدیده‌ای دیگه ای بوده که این بندر ویران شد دردا و دریقا و با افسوس که نخستین بندر پیوند دهنده جهان غرب و شرق ویران شد متاسفانه و همین دوست عزیزمون که آقای سید مرتضا روان هستند گفتن که من رفته بودم ام آرامگوای فردوسی اون خانومی که حالا تو سوالشون به این صورت هست خیلی کلی نوشتن یه خودم کمتر پیامک اون کوتاه در بدیم اونطور برای من هم جالب هست که بگم این رو البته آقای دکتر فریدون جنیدی استاد فریدون جنیدی این مطلب رو فرمودن در مورد این شعر گفت بس رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم از این پاسی من گفت معترض شدم اینکه پیامک نوشت که من معترض شدم به این خانم به خاطر اینکه ما عجم نیستیم و در برنامه پنجره های روبه محطاب این را آی دکتر فریدون جاندی گفتند. شاد باشید. البته عجم در زبان عربی به عنوانی کودند و گنگ و بیخرده. و اونا گمان بردن که مثلا فرض کنید که پدران پورسینا، پدران عبوریهان، پدران فیدوسی، نیاکان و ما گنگ و بیخرد و کودند بودن. این رو به هیچ و شایسته نیست به کار بریم. البته یونانیان با ما میگفتن بربر عربا به ما میگفتن عجم ترکمان به با ما میگن قول یعنی گولام یعنی, یعنی بنده نکر اما این فقط فرهنگ ایرانیه که هر کس تو با نام خودش خونده وقتی که صحبت ایرانی بودن بوده گفته ایرانی و انیرانی انیرانی یعنی نایرانی نا توهین به کسی نکرده اما در این بیت دو نکته دیگه هست که میشه در برش انگشته هاد یکی اینکه سالسی غلطه در زبان‌های آریایی عدد همیشه پیش از معدود میاد به طوری که من بارها گفتم که اگر شما به کودک سه ساله بگید گردو پنج به شما میخنده بعدش به این پنج گردو. و خداوند سخن نمیتونه کمچه چه اشتباهی کرده باشه. مرحله دوم این که فردوسی رنج نبرده اینو افسران دربار محمود خواستن که من منمو... که فردوسی فقیر شده، تهیدت شده، رنج برده. و نیاز به پول داشته و محمود بود با... من که همیناش شکافتم معلوم شد که اه, 19 سال پیشتر از اینکه محمود بشه امیر خراسان فدوسی آغاز کرده بودش آن رو فدوسی برای روان نیوکانیش و برای آیندگان گفته این دو بیت هست که یکی که گشاده زبان و جوانیت هست سخن گفتن پهلوانید هست شوین نامه خسروان بازگوی بدین جوی نزد ماهان آبروین نی یعنی بزرگان ایران یعنی زبان نیاکن در بیت پایانین شاهنامه چنین آمده که هر آن کس که دولت خوش و رای و دین پس از مرگ برمن کند آفرین یعنی ایرانیان آینده بلد. بنابراین فدوسی به پاس بزرگی و بزرگواری نیاکان شاهنامه سرود برای ایرانیان آینده نه برای هیچ کار دیگه و شما همون باقی رو که میبینید اون خانم امیدوارم اون بانو ایرانی هم این برنامه رو گوش بکنه همون باقی که متعلق به فردوسی دیگه تردید نیست که در تاریخ که متعلق به فردوسی همین زمانم اگر از آن کسی باشه یه خانواده هفت نفره رو به خوبی اداره میکنه و رنجی تیدستی چیزی در کار نبوده به نظر من فردوسی سی سال در آسمان مهر و آذر و شرم. و بزرگی و بزرگواری نیاکان خردمندش پرواز کرده چرا رنج بردم وقتی که خودش میگه که قران کسی که دارد حشور و دین پس از مرگ بر کند آفرین یعنی من کارم رو به بپا، خوبی به پایان رسوندم و رنج نه بردم بر. این سه مورد در این بیت که نشون میزه که از آن فیدوسیمیست برنامه رو شروع میکنیم با اینکه میدونم تلفون های برنامه رو میدونید و شماره پیامک رو میدونید من خدم از اون عرض میکنم دو 2020، چهصد 85 2020، چهصد 85، 220 588 5 و8۸، دو و شماره پیامک ما ۳۵۵ و هست. هشت بعضی از پیامک های شما در روزهای گذشته و امروز اومده که خیلی ازشون مثلا موج رادیو رو عوض کردن شهرستان میانه تهران رو چه موجی بگیرن هر شهرستان رو موج اف امش متفاوت هست و موج اف ام میتونید شما برنامه رادیو فرهنگ رو بشنوید و برنامه ما رو اما در تهران شماری که وجود داره یادم رفی رفیق حالا عرض می کنم خدمتون داشتم پکر یه دیگه من مثاله. از شما چونی بکنم 106 ماهیز هفت هفت بله خوب شد گفتی شما بچه ها ازتون نمره کم بکنم نه قبولم بکنم شش ماهیز هفت صد و هفت اف ام از تهران هست و از طریق شما می موج 558 هم برنامه ایم در تا سر تا ایران بشنوید در هر عشتان موجه اف ایم میتونید پیدا بکنید پایگاه اطلاع سانی ما www.radiofahang.ir هست و شما هست دیده از دیده ایزانی که خواهید از کشور اقوام خیشان دوستانشون هستن ایرانیان از که در سر تا سر جهان هستن میتونن از طریق محبار های هاتبرد اون بخش راژی ها رو پیدا بکنن و نام رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن میتونند برنامه ما رو در خارج از کشور بشنوند ما برنامه رو با امید خدا شلومی کنیم دوران پادشاهی کی خسرو هست و از کنم حضورتون که نبرد ایران و توران در شاهنامه ویرایش آقای دکتر فریدون جنیدی صفحه 413 دفتر دوم در شاهنامه که خودتون دارید اگر پادشاهی کی خسرو رو پیدا بکنید میتونید نبرد ایران طولانم پیدا بکنید میتونید پیگیر باشید اون که گفت ما منتظریم ما هم منتظریم با شما که بشنویم داستان رو. قبل از این که شروع کنید آیه استاد فریدان جمهدی اولا سخته من میگم دکترانه یکی رو تغییر دادم و گفتنم سخته استاد جمهدی قبل از این که یکی از پرامکه اومده گفتن معنی این شعر چه بود آقای دکتر خواندند شعر آقایی که خواندید مورد معنیش پرسیدند بله آزمایش یعنی سختی بردن یعنی سختی بردنی که خودش انسان به خودش بده. ام از این آزمایش ما الان تحکیباتی داریم مثلا فرض کن رنج آزمایی کسی که رنج بسیار بر خودش و بر روان و تنش روا کرده یا جنگ آزمای یعنی کسی که در جنگ ها خیلی خیلی کوشش کرده و رنج برده اگر یادتون باشه دو جلسه پیش که الوا که نیزه دار رستن بود پشت سرش اومده که بسی رنج برده و جان سوخته هنرها زرستن بیاموخته در جنگ باید انسان رنج ببره تا بازوانش قوی بشه تنش قوی بشه تا بتونه جنگ بکنه این جنگ آزمای مثلا سعدی داره که نبرد پیش مساف آزموده معلوم هست چنان که مسئله شهر پیش دانشمند مسافاز آزموده این یعنی همون جنگ آزموده یکی از واجه های زیبایی که خیلی درد و رنج همراه هست مهر یعنی عاشقانی کسی که از عشق رنج میبره درد میبره و هیچ کس اون درد و رنج جانکاه خانمسوز رو نمیتونه تصور بکنه مگر اینکه در این دایره مهرازمایی بیفته حالا اینجا که میگه که جوانان داننده باغوهر کسانی که نجات دارن باید آزمایش روزگار رو بر خود هموار کنن یعنی رنج و سختی بر خودشون هموار کنن تا اینکه هنرمند بشن بله خب شروع کنیم داستان رو اگر بیاد داشته روشید که پیران وقتی که با رستم سخن گفت برگشت به نزدیک خاقان و بدون سوگواران چونین گفت باز که این رزم کوتاه ما شد دراز سه دریا هنگی به جنگ آمده است که جوشنش چرم پلنگ آمده است اومد مقابل رستم جوابش رو شنید برگشت ش... جوشن رستم ج... چرم پلنگ به. یعنی رستم. ببینید تا کاره چار کار... چاره کار چیست در این را مرد وگه مرد بدو گفت ما کنون رو کنون چیست روی چه آمد سپاهی چنین جنگ جوی؟ چنین گفت شنگل که ای سرفراز چه باید کشیدن سخونها دراز؟ به یک مرد سگزی که آمد به جنگ چرا شد چنین و شما کار تنگ؟ برفتیم چون شیر جنگی دمان رهبر نجستیم جایی زمان برفتیم ببینید الان در گفتار امروز ایرانی باید بگه آمدیم میگه برفتیم برای چی؟ برای کسی اگر به طرف شما میاد اگر از خودش بپرسید که داری چیکار میکنی میگه میروم تبایی کردیم؟ بلده. اون کارش رفتنه نه آمدن به همین دلیل که اینجا میگه برفتیم چون شیر جنگی دمان یعنی از کشور خودمون بیرون. و همین امروز در تاجکستان هنوز این روح به همین ترکید میکنم نمیدونم به نظرم در این برنامه ها یک بار گفتم یک دوست بسیار ارجمن داشتیم به نام آتخان لطیفی که من خیلی ایران پرست بود و سر مهر ایرانم جان جان خودش از دست داد در تاجکستان من یک شب که وقتی که در تهران بود ازش خواهش میکردم که که شما خزید آید نزد ما میگم تا بگوشه بقیه شما بگونه ایرانیان به خیزید آید نزد ما ام این گفت که شب دیر است و زحمت نمیتهم گفتم که تیز خیزید آید خواهش دارم ام گفت که اکنون میروم خانه شما حالی که از دیدگاه من باید بگه اکنون می‌آیم، اما خالد. اون میگه میروم اینجا میگه برفتیم چون شیر جنگی دمان. یعنی از کشور خودمون درفتیم اومدیم اینجا رحبر نجستیم جایی زمان، یک مرد ننگ است گفتن سخون، به جلگونه باید افکند بن. سپید دمان گرزها برکشیم، از این دشت یک سر سرندر کشیم. هماناز جنگاوران صد هزار فزون است از ما دلر و سوار. زیگ تن که ننزار و پیچان شدیم، همه پاک ناکشته بیجان شدیم چون من پیش شوم هم نبرد شما با آسمان اندر آورید گرد. یعنی حرکت کنید. یعنی نبرد دست جمعی. چوبش نید لشکرد از شنگل سخون جوان شد دل مرد گشت کهون. بدون گفت پیران شهر بوی روان را به دیدار توشه بوی یعنی دیدار تو توشه روان نه بینندگان باد. همه نامداران و خاقان و چین گرفتن بر شاهد. برشاق هند آفره از این روی رستم یلان را بخواند. سخونهای بایسه چندی براند هنر مردمی باشد و راستی هنر اینجا به منی جنگ یعنی جنگآور باید مردمی داشته باشه آخر در جنگ هایی که مثلا در اروپا اتفاق میافتاد یا در جاهای دیگه هم تو تر خوش که عمر می در حالی که در چنین چنین نبود بارها و بارها ما دیدیم کشاورز و مردم پیشور ور کسی خوب به کمر نباید که آزار بیند راه چون این است آوین تخت و کلا اینا اینجا میگه هنر مردمی باشد و راستی هنر یعنی جنگاوری باید همراه با مردمی و راستی باش ز کجی بوبت کمی و کاستی چو پیرون بیامد بر برای من دمان سخن گفت با درد دل یک زمان که از نیکویی با سیاووش چه کرد چه آمد به روی گشت تیم درد اوا آن که اندر دلم شد درست که پیران به کین کشته آید نخوست ولی ایکن نخواهم که بر دست من شود کشته این پیر در انجمن که او را بجوز راستی پیشه نیست زبد بر دلش هیچ اندیشه نیست گریدون که بوزارت آن را که گفت گناه گذشته به باید نهفت یعنی مصول اون چیزی که قول داد و گفت اونا را عمل بکنه بهش چوبش نیرگودرز بر پای خواست به دو گفت که این محتره راداراست ستون سپاهی زیبای گاه زیبای یعنی زیبنده ستون سپاهی و زیبای و گاه فروزان به تو شاه و تخت و کلاه یعنی در حقیقت شاه و, و... تخت و تاج پادشاهی از تو فروغ میگیره سر ماغیه توست روشن خرد روانت همی از خرد برخورد نخستین که ما رازمگه ساختیم سخون رفت و کار پرداختیم ز پیران فرستاده آمد بر این که بیزارم از دشت و از رنج و کین که من دیده دارم همیشه پرابز و گفتار و کردار افراسیاب این مرتبه از کار افراسیاب میگرگم. میان بسته هم بندگی شاه را یعنی حاضر هستم که بیام بندگی که خصور بشم. نخواهم بر بوم و خلگاه را به گفتی و پیران برای بازگشت شب تیره با دیو هم بازگشت. هم باز, باز یعنی هم, هم در اینجا هم هست و هم باز و هم باز و هم باز و هم باز به حصورت اومده. باز از ریشی وز عبر گرفته شده یعنی و روش هم باز یعنی کسانی که با هم جنبش میکنند با هم میکنن. با هم یه حد کتی یک که در زبان تازی شد شویک بگفتیم, بگفتیم و پیران برای این بازگشت شبه تیره با دیو هم بازگشت هویونی فرستاد نزی کشا یعنی افروسیان که لشکر برا رای را کامت سپاه تو گفتی که با اون نرفت این سخون نسر بود در از کار پیدا نبون کنون با تو ای پحلوان و سپاه یکی دیگر افکند بازی برا شداند که تنگ در آمد نشیب یعنی سرازیری به کار آورد بند و رنگ و فریب البته این باجه درستش نشیب و فریب فریب نشیب در پهلاوه نشیب فریب در خورستان هنوز میگن فریب چوداند که تنگ اندر آمد میشه به کار آورد بند و رنگ و فرب ببینی که چون بردمد زخم کوس یعنی همین که ضربه به کوس ها زدن برای آغاز کار به جنگ اندر آوید سپهدار توس سپهدار پیران بفت پیش رو که جنگ آورد هر زمان نو بنو دروغ است یک سر همه گفت اوی نشاید جز از اخرمند جفته اوی بشنی نیدرستم به گودرز گفت که گفتار تو با خرب باد جفت، چون این است پیرانو، این راز نیست که آن پیر با ما همهواز نیست، ولی من از خوب کردار اوی، نجویم کین و پیکار اوی. نگه کن که با شاه ایران چه کرد، زکار سیاه وش چه تیمار خورد، گر از گفته خیش باز آیدوی، به نزدیک ما رزم ساز آیدوی، به فتراخ بر بست دوران کمان کجا او جنده در آقود به بعد. زنیکو گمان اندر آیم نخست. نباید مگر جنگو و پیکار جست. در آغاز من با گمان و اندیشه نیکو میرم جلو شاید که راست گفته باشه. مگر نه خوب؟ ببینیم، ب... ببینیم تا کردگار جهان بدین آشکارا چه دارد نهان. به ایرانیان گفت شب می یکی اختری افکنم نیک پی که فردا و من این گرد سام و سوار به گردن برارم کنم کارزار. دار. لشکر روستن و تورانیان چه خوشید کلاه چون سی بین سپر دید رخسار ماه این چند بار گفتم این روز 15 همه یعنی شب چارده هم ماه بیرون میاد درست رو خورشیده و ماه آسمان رو میتونه از شرقین از خراسان به خوربران و خورشید شب از زیر زمین میاد از اون بر از خراسان بیرون میاد درست زمانی که خرشید ماه میخواد دیگه غروب کنه در خوربران خرشید برمیاد و این دوتا تا رو به روی هم قرار میگیرند میگه که خرشید بخشان کلاه رو بخ... چو سیمین سفر رخصار ماه رو دید به پرسید ماه از پیه گفت و گوی به خم اندر آمد بپویشید روی یعنی ماه اینجا یک ای اشاره خیلی زیبای میکنه ماه که در جامعه یک دختر آراهی یک دختر اینجا نمایه میشه از په گفتگو یعنی من با مردم پشت سر رو سخن میگن که درست رو بروی خوشی اومد به خم فلک و روی خودش پوشید. درست روز پونزه همه صبح پونزه همه همین گشت پیران به پیش سپاه بیا اومد برای شنگل رازم خواه به دو گفت که این نام برداره هم زتوران به فرمان را تا به سمت مرا گفته بودی که فردا پگاه زهر سو به جنگ در آرام سپا اوزان پس زرستن به جویم نبرد سرش رازه عبر اندر آرام بگرد یعنی سرش که بلند هست اینقدر زیاد که به ابر میرسه او رو خواهم کش و بیاد سرش ب... به گرد یعنی به خاک برسه به دو گفت شنگل که من از گفت خیش نگردم نبینی نیزه من کم و بیش از او کین کاووس جوگم کاموس جویم به جنگ به ایرانیان برکنم کار تنگ چو پیران چنان دید دل شاد کرد زرزم تهمتن در نمونه ها اومده که دل آزاد کرد ولی خب دوتا دل در یک جای نمیاد سر آزاد کرد به حومان چنین گفت که روز کار به کام دل ما کند روزگار بازان که شد به تان انجامن به جایی که بود سایه پیلتن سایی یعنی چطر تو توی بیابون برای روستم یه چطر رو گذاشته بکنم جلو سپا که زیر چطر است که آفتاب آزارش نده به ویژه وقتی که جنگ افزار می پوشن و زره می پوشن و همه تلویزی هست زیر تابش آفتاب و بیشتر گرم میشه. بنابراین برای سرداران سپا سایه می زدن یا یعنی می می فرود آمد و آفرین خوان چند که زور از تو گیرد سفهر بلند مبادا که روز تو گیرد نیشب مبادا که آید به روگت نیهب دل شاه ایران به تو شاد باد همه کار تو سر به سر داد باد برفتم نزد تو ای پهلوان پیامت بدادن به پیر و جوان. به فرجام گفتند، کین چون کنیم که از رای او کینه بیرون کنیم. توان داد گنج و زر و خواسته، زما هرچه او خواهد آراسته، نشاید گنهکار گناه، دادن به دوی. برندیش این کار را بازجوی. گنهکار جز خیش افراسی که کدانی؟ سخون را مزن در شتاب هر که خواهد همه مهترند. بزرگند و با تخت و با افسرند. کجا آشتی خواهد افراسیاب که چندین سپاه آمد از و آب؟ به پاسخ نکوهش بسی یافتم یعنی پهلوانان توران من رو نخوش کردم. به دین سوی پهلوان تافتم. چوبش درستم، برای شو سخت به پیران چون این گفت که شور بخت. و با این چنین بند و چندین فرد کجا پایداری به روز نهب اوزان پس کجا پیرگودرد گفت همه بند و نیرنگتن در نه بدیدم کنون دانش و رای تو دروغ است یک سر و پای تو به همی همین خیره در خون خیش دین و زین بدتر آید پیش چون این زندگانی ندارد بها که با شد سرم در دم اجده یعنی افراسیاب. از این طرف اجده یعنی کو آتش از یک ای طرف اینجا به معنی به افراسیابه. اونو افراسیاب رو همانند کرده با کو آتش به شان مگر گفتمان خواه که بیداد و شون گزاری بیایی به آباد بوم،, آباد بوم. یعنی ایران. ببینیم اگر شاه باداد و میر. جوان و نوازنده و خوبچه به دارد تو را چون پدر بیگمان برارت سرت برتر از آسمان تو را پوشش خوخ و چرم پرنگ همین خوشتر آیل زدی با رنگ این نشون میده که تورانیان لباس با آین ایران نداشتند، جامعه به آین ایران نداشتن پوست جانوران را بکشتن ندارد کسی با تو این داوری ز تخم پراکنده خود برخوری. ادو گفت پیران که عینیک بخت برا اومند و شاداب برومند میگیم نادرسته. بر اومند یعنی دارنده میوه. درخت برومند یعنی دارنده میوه. تن اومند باید بگیم دارنده تن. میگیم تن اومند امروز. این برو و تن اومند نادرسته. بر اومند تن اومند. سخونها که دانت جد از تو چونین؟ که از محتران بر تو باد آفرین. من جان و دل زیر فرمان توست. همیشه روانم گروگان توست یک امشب زنم رای با خیشتن بگویم سخون نیز با انجمن. چو پیران تو برگشت پیران هر دو گروه زمین شد به کرده جوشند و کوه. چون این گفت رستم به ایرانیان که من جنگ رو بحث دارم میان شما یک به یک سفت پرسکین کنید بروهای جنگی چین کنید بروید ابرو چون در جنگ عبراه اخیر میشه که امروز رزمی بزرگ است پیش حدیل دوزی سلام ویو در گذشت جهان پهلوان تختی تسلیت باد یک کس پیغمبر کل شد روانش شد پهلوانی بود که خوب خاک زوخونه رو بوسیده بود هیچ گونه بدی و کار و ناشریست و دیده نشد در آخرین کشتی که می‌گرفت با پهلوان روس پهلوان ما روس گویا پای چپش آزار دیده بود و پای چپش رو میخواست که از خطر دور کنه و تختی میتونست پای چپ بگیره و او رو زمین بزنه اتا. اما این مرد نکرد تا پایان کشتی پای چپ اون رو نگرفت و در اون نبرد پهلوان روس برد من شنیدم سالها اون پهلوان روس در هنگام یعنی روز در گذشت پهلوان میومده به زیارت خاک تختی تختی پهلوان خیلی خیلی برجسته بود، فرزند رستم بود. بلد. و پیامکی ادامه این پیامک سوال کردن که به نظر استاد اوج شاهنامه چه قسمتی است؟ آقای شهباز بیگی از آقای خانم شهباز بیگی از در درست بر بروجت بروجت در ازبود ویرو کرد، ویرونام. یعنی شخص باهوش هوش یعنی ساخته شده به دست ویرو و اوج شاهنامه شاهنامه است من میدونستم می‌خواستم چون بارس بارس سوال کرده بودن البته با احترام به ایشون یه سوال کردن آ یعنی اینکه یه زندان چند هزار ساله است در به نام قصر روناش که نام قدیم دسفوله که در شهر دسفول کنونی هست و حتی شاپور ساسانی مدتی در آن زندانی بوده آیا اطلاعی دارید شما آقای فرحمند این رو پرسیدن من پارساد که رفتن دسفول و شگفتی های دسفول رو دیدن پس از اونم بازدردن به شوشتر به ظاهر من فقط این صد شادروان و اون چیزهای آب رو دیده بودم یعنی آسیاب ها شوشتر هم خیلی شگفته هم شوشتر هم دزفور شهرهای باستانی خیلی شگفت هستن که باید روشون واقعا مطالعه بشه اما این مسائل در شانه و تاریخ ها نایمده. شاپور ساسانی هم در اونجا زندانی باشه محبومش اینه که مثلا یک کاری کرده باشه خلاف مسئله ساسانیان او چنین کاری نکرده داره که این زندان و خارجی یکی از زندان های ایران بوده باشه که مورد استفاده قرار می گرفته برای بندیان بلد. در مورد منشور اه... کوروش بود که سه ماه دیگه تمدید شد ماندنش در ایران اه و اه... پرسیدن که در چه زمانی از ایران خارج شده و خ... چرا به خط میخی بوده متعظمین کتیبه و لوحه ها چه اندازه در کارشان دقت و وفادار داشتند یعنی این رو خانم جهانیان از شیراز خانم یا آقای جهانیان از شیراز این لوهه به رسیل شخص به نام هرموز رستان پیدا شد و انگریسی ها که اونجا کابوش میکردن هرموز رستان پیداست که ایرانیه این میتونه به تلافی همه بیشرمی ها و بیازرمی های باستان شناسان فرنگی که همه انوال ما رو دوزیدن و بردن و گنجین ها خودشون رو پر کردن این رو به ولی روی امانت ایرانی بودنش داد و خب بردن اونا بردن غیر از این هم باز خیلی شیزای دیگر بردن و اما که چرا به خط میخی هست این خب خط زمان بوده دیگه اون زمان همین خط بوده نباید شما الان تصور کنید که به خط فارسی کنونی باید نویشی شده باشه خط زمان بوده و من اینجا زمین این که سه ماه دیگه خوب این منشور باقی خواهد بود در سرزمین اصلی خودش اما میخوام به ایرانیان پند بدم بیایید از اون فرهنگ شکومندی که کوروش رو پرورش داد و کوروش به آزار و ستم و درد و جنگ و خونریزی و قدر رازی نبود و فرمان نیاکان خودشون رو اجرا میکرد تا با در حقیقت پیروی از اون فرمان عظیم نیاکان این چنین شخصیت بزرگ جهانی رو به خودش گرفته که در جهان بی بی گمان برترین شخص شناخته میشه هیچ کس از او بدی نگفته و همه کتاب ها و عدیان مختلف از او به بزرگی یاد کردند و این زاده اون فرهنگ شکومند عظیمی بود که کوروش رو پرورد ما بیاییم اون فرهنگ رو, فرهنگ رو بشناسیم و راه پیبان یعنی باشیم که در راه اون فرهنگ و در راه کوروش بزرگ رفت حرکت بکنیم درود از استاد درباره واجی خوزان که نام یکی از پهلوانان ایران و همچنین یکی از بخش‌های شهر سده هست بپرسید سپاسگذارم با امداد از سده سپاه هم دروش بوندم. خوزان خوزانه خوزان. نام خوزان در پهلوان در شانومه نداری مگر در بخشهای افتوزش اما خوز در حقیقت نام نخست همون خوزستان بوده در سنگ سنگ های پارسی باستان اوج و اوج اومده و در سنگ نوشته های خود خوزستان که اروپایی‌ها بهش میگن ایلام اونجا رو میخوان از ایران جدا کنن ایلام خطاب کردن و بعدم با این نوشتن که به طور کلی دیگه صورت غیر ایرانی بگیره اما در سنگ نوشته‌های خودش هم اونا همه جا اوج اومده و من در پیشگفتار فرهنگ های پهلوی بخش مفصلی رو این گذاشتم که نشون بدم که زبانشون ایرانی بوده و گفتارشون هم ایرانی بوده، این اوجی که در سنگ نیوشتهای پارسی باستان هست و در سنگ نیوشتهای اونان هست، اوجه تبدیل شد به خوچ، در خوچ... خوچستان در واژه پهلوی، تبدیل شد به خوز در خوزستان و در مثلا تبدیل شد به سوز، در سوزیانا، در سوزنگیر، در شوش، همه اینا ریشه همون اوج رو داره و اینا ایرانی هستند، اما این گویان فرنگی میخوان خون اینا رو جدا کنن از ایران یکی از شگفت ترین داوری های اینا اینه که در کوبچه خودم یه, خود. یه سری رو پیدا کردم که این سر 3200 سال تو غیر بوده خب پیداست که سری 3200 سال تو غیر باشه رنگش سیاه میشه لواش اندکی ورم میکنه خوی نخوئه دیگه بله این... بر اساس این یه دور سر گفتن اینا ایلامیان ایرانی نبودن اینا احتمالاً سیو بودن آسیا مثلا قاره آفریقا اومده من اینجا این دروغ بزرگ تاریخی رو گفتن تو کتاب‌ها روان کردن دانشجو ایرانی هم باید همینا رو بنویسه تا نمره بگیره خرت کجاست که سری که 3200 سال تو خ... غیر بوده خب باید سیاه بشه و اگر اونا ایلامیان به قول اونا و با این اگر اینا اه... سیاپوس فوسفودن تاریخی بودن خب... بله باید بخوزستان بازم ما داشته باشیم هنوز همه جا خوزستانو خوز ما هنوز این نام رو به صورت دگرگون شده از اصلی اوجه چند هزار ساله در خوزستان داریم اینجا ایلام نیست و خوزم یک بخش خیلی مهمی از ایران بوده که الان هم خوزستان نامیده میشه آیا شاهنامه با ورود به دوره ساسانیان استواری کلامش رو از دست نمیدهد من نمیفهمم که مقصودشون چیه و این شاهنامه به خط پهلوی بوده و چهار کس این رو برگردوندن به فرمان انوش احروان ابو منصور محمد ابن عبدالرزا توسی کنارنگ خراسان این چهار نفر یکی ماهوی خورشید نیشابوری بود، یکی موبدی از یزدانداد از توس بود، یکی یزدانداد از سیستان بود و یکی موبد شادان برزین از توس به اضافه ماه پهلوان و بزرگ خراسانی از شهر هرات این چهار نفر نشستند برگردوندن از پهلوی به فارسی بعد فردوسی این ترجمه ترجمه رو که مقدمه و پیش کوختارش اکنون در دست هست در بیست مقاله گذبینی موجود هست شما میتونید اون اونو ببینید نست فارسی خیلی خیلی زیبا داره اما فردوسی این رو ترجمه کرد به گفتار آهنگینی خویش و اون رو از زمین به آسمان برد. به <تصفيق> نام با درود خدمت آقای دکتر جنیدی و آقای هدایتی سپاسگزارم از شما لطفا گشن آبریزان در ایران باستان در چه ماهی از سال گرفته می شود؟ با تشکر و سپاس آقا سیابش از کرچ درود بر شما در روز تیر از ماه تیر یعنی روز تیرگان در گاه شماری باستانی روز سیده می شده روز تیر ولی چون خیام بر اثر در حقیقت محاسبات شگفت نجومی خودش که امروز دیگه دستگاه و کامپیتر ها اون را تایید میکنند 6 ماه اول سال۳ رو یک روز کرد بنابراین فرور این اریبهشت خرداد این سه روز به, به ماها افسوذ شده بنابراین در این زمان باز روز دهم تیر بگیریم جشن آافریزگانه که جشن خوبی است که هنوزم در بس بین بسیاری از مردم روان هست و از جمله ارمانیان و آسوریان این رو دارن و همین جشن بود که به وسیله با کیشمه رفته به اروپا اروپاییانم این جشن رو بعد بفرمایید خوندم بخش زیادی از پرامکار رو خوندم حالا باسم میخوانم <تصفح> میپرسم از چون پاسخ سپاهیان به رستم پاسخ میدن چون این دو پاسخ به رستم سپاه که فرمان تو برتر از چرخ ما چنان رزم سازیم آتق تیز که ماند ما نام تا رهست خیز تلفظ درست میخونم که کم کم گوش ها عادت میکنم